برای نماز خواندن دخترم آیا اجبار لازم است با توجه به اینکه نزدیک سن تکلیف هست لازمه برای نماز خاندن اجبارش کنم بله نه باید تشبیرش کرد اگر خود ما به موقع نماز هامو رو بخونیم و ارتباطمون رو با بیقید ها حتی فامیلا نزدیکی که ارقی به کارهای دینی هجاب نماز اینها ندارن ارتباطمون رو به حداقل برسونیم. به مقداری که واجبه اگر ارهام بچه ها خیلی تحصیل فجری از حامل و رفت آمدها و اینها دارن اگر اون زمینه یه مقدار کم رنگ کنیم از این خودمونم مشغول کارهای خودمون و وظایفمون باشیم بچه ها خوب میشن